حکایت خرق پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود. یکی از عمرای عرب را صد دینار بخشیده تا قربان کند. دزدان خفاجه ناگاه بر کاربان زدند و پاک ببردند. بازرگانان گلی کردن گرفتند و فریاد بیفاید خواندن اگر تزرع کنی و اگر فریاد دوست زر باز پس نخواهد داد مگر آن درویش ساله که بر قرار خیش مانده بود و تغییر در او نیامده گفتم مگر معلوم تو را دوست نبود، گفت بلی بردند. ولی بردند ولیکن مرا با آن الفتی چنان نبود که به وقت مفارقت خست دلی باشد، نباید بستنم در چیز و کست دل، که دل برداشتن کاری است مشکل، گفتم مناسب حال من است، آنچه گفتی که مرا در عهد جوانی با جوانی اتفاق مخالطت بود و صدق مبدت تا به که قبله چشمم جمال او بودی، و سود سرمایه عمرم به سال او مگر ملایکه بر آسمان وگر نب بشر به حسن صورت او در زمین نخواهد بود. به دوستی که حرام است بعد از او صحبت که هیچ نطفه چون آدمی نخواهد بود. ناگهی پای وجودش به گل عجل فرو رفت. و دود فراغ از دود مانش برآمد. روزها بر سر خاکش مجاورت کردم، و از جمله بر فراغ او گفتم، کاش کان روز که در پای تو شد خار اجل، دستگیتی بزدی تیغ هلاکم بر سر، تا در این روز جهان بی تو ندیدی چشمم، این منم بر سر خاک تو، که خاکم بر سر آنکه قرارش نگرفتی و خواب تا گل و نسرین نفشاندی نخوست گردش گیتی گل رویش بریخت خاربونان بر سر خاکش بروست بعد از مفارغت او عزم کردم و نیت جزم که بقیت زندگانی فرش هوس در نبردم و گرد مجالست نگردم. سود دریا نیک بودی گر نبودی بیم بوج. صحبت گل خوش بودی گر نیستی تشویش خار. دوش چون طاووس می من در باغ وصل دیگر روز از فراغ یار می پیشم چون ما.